صلی محمد و محمد کما صلوت علی ابراهیم و علی الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد و و ما مقدمه به سلسلی درس های اسلامی در مورد وجود خداوند متعال جدجال رفو خلاصه درس سابق مایی بود که انسان دارای دو صفت اساسی می باشه که یکی بسارت انسان است که حس باسره انسان، چشم انسان است که بعض حقیقتها را درد می و گفتم که چشم اگر وظیفه دیدند داره ولی نمیتونه که ای وظیفه خدا به شکل کاملش انجام بده تا وقتی که نوری در وجود نداشته باشه و خاطر اینکه چشم وظیفه خدا ادا کنه مجبور است که نور وجود داشته باشه و از اون نور استفاده کرده وظیفه خدا انجام بده چیز دیگه که انسان داره او بصیرت انسان است بصیرت قوه دید معلوی و جید فکری و دید قلبی انسان است که اگر انسان میگه که حقیقت را تنها به شکل مادی بلکه به شکل حقیقی از اون نظر بکنن از بصیرت خود استفاده میکنه و مثال گفتیم که وقتی انسان یک غذای رو میشرویش در اینجای گذاشته میشند و میخوایم برو بخورم میبیند که این غذا از نگاه ظاهریش که حس باسره انسان رو ببینن، غذای بسیار خوب است بسیار لذیذ است اخزام مختلف به هنرهای آشپزی دو استفاده شدن ولی وقتی که حس بسیرت خدا در کار میبردن و از آقبت و از جایی ای غذا آمدن دباری عزیف فکر میکنن و اگر اینه بخوره آقبتش چی میشه؟ دباری عزیف فکر میکنن باز درک میکنن که خوردن از ای غذا که شاید از پول حرام ترتیب شده باشه و یا در بین از او شای حرام استفاده شده که بالای از او نام خدا گفتنه شدن عاقبت بده داره از این خاطر از خوردن همون غذا که اگرچی برای چند لحظه ظاهری داره ولی در حقیقت آقابتی بسیار بدیره برای انسان هم در دنیا و هم در آخرت سبب میشه، از او اجتناب میکنن و باز گفتیم که اینمی بصیرت انسان که هست، ای هم مثل همی که چشم انسان به نور ضرورت داره تا که یک جایی رو میبینه و میخصم بصیرت انسان هم به نور دیگه زبرد داره که او نور ایمان است. تا وقتی که نور ایمان نباشه انسان نمیتونه که حقیقت ها را به شکل درست و کامل از اون درد بکنن بخاطر از اینست که بسیاری کسایی که بسیار دانشمند هم بودن، عالم هم بودن ولی نور ایمان نداشتن اینا بالاخره به گمراهی رفتن بدبخش شدن ولو که به کارپیماهایی را ایجاد کردن ولو که بسیار کارهای عالی کردن از دگاه مادی لیکن آقابتشان بدبختی و شکست بودن و نتایج اونمون تحقیقات که اثر ایمانی نداشتن مثلا ما شما امروز می‌بینیم که یک ساینستان که عالم است و در ساینس بسیار دسترسی داره و ایمان نداره اونمون ساینستان از است کرده های یک طفل ماسوم دزدی میکنه و تفل ماسوم میکشه و امروز دزدها. شریک میشه و باز سازو سر تجارت میکنن شما این موضوع با شما که در بعض جایه تفلقه های دوزی میکنن و گرده میکشن این گرده که میکشن این انسان آلکی کشیده نمیتانه دا یک داپتر نباشه داید متخصص نباشه یا دا کسی که اون را در یک فریزر یا یخچال مخصوصی از او حفظ نکنه از این خاطر از اونها که اساس ایمانی نداشته باشه به این وقتی را برای دنیا بیارن بدبختی را اینجا ایجاد می کنن و با باعث بدبختی بر جهان میشه. از این خاطر نور ایمان است که می که قوی بصیرت انسان رشد بتن و انسان حقیقتها را ببینن یعنی یک تلسکوپ داخلی در وجود انسان با واسطه ایمان نصر میشه که میتونه که بسیار مسافات دور ببینه ببینن جمعنت درک بکنن دوزخه درک بکنن خدا را درک بکنن بلایکه ها را درک بکنن و همه چیز همه چیز درک بکنن. این نقطه بود و سوال دیگه که باز به جمع کردیم گفتیم مثلا چرا بسیاری از دانشمننددان مسلمان نمیشن؟ مثلا ما شما ببینیم که بسیار اولمو ها هستند، دانشمند هستند، ولکن مسلمان نیستند گفتیم که اینا نمی که مسلمان شدند به خاطر اینکه کسانی که خواستند که مسلمان شوند، مسلمان شدن. و مثال از اون خانم امریکایی که گفتیم کتاب نوشتر کرده بنامه اینا خوشید از از غرب طلوع کنن این خانم میگه که من یک هزار کتابه مطالعه کردم تا که خدا را بشناسم یک هزار کتابه من کتاب‌های یوودیت‌ها، کتاب‌های نسرانیت‌ها، کتاب‌های مسیحیت کتاب‌های افکار مختلف من مطالعه می‌کردم ولی مشکلی بود که هر کتابی رو که مطالعه می‌کردم، اگر این کتاب ده سوال من عمل می‌کرد، نوت سوال دیگه در ذهنم ایجاد می‌کرد که من اروز هم در مشکلات فکری قرار می‌داشتم لاکن آخرین کتاب، ببینید بعد از 999 کتاب می‌گه کتاب هزارمش قرآن از این بود در دو نقطه هست، یکی یه که ببینید مسلمانها چقدر ظلم میکنن یک نفر مسلمان شده بود، در یکی از کار فرانسا می‌گفت گف. برد را ببینید ما مسلمان شدم، لیکن از شما مسلمان بدر بی ایمان بود ما خارجی‌ها و غربی‌ها گفت همه چیز داریم تا اگر موبایل بده، اولین موبایل ما بر شما روان کردیم در جیمای کل تا موبایل‌هاست، دست و مسجد و ایران در قصه‌اش ن جواب گفتام این، موثر دارن، تیورا دارن، مسائل دارن. شما دوباره هیچ چیز ترانه کنین، کلام را بر که خداوند رحمت کرد برای شما و ابدالست دانست، عده علیمینه خصادر کنین بر خارج، تاک مردم، از می قرآن استفاده می مردم تشنه هستن، لکن قرآن دارند شن و بسیار سختی میگه، ده. میگه نو صد نو کتاب مقدس لو ساز امام دانوخته طب قرآن از بود و بالاخره این قرآن از تمامی سوالای مرا جواب داد و من تانستم که از قرآن از استفاده بکنم و بالاخره من مسلمان شدم. آن درس امروز ما شما درباره چی درس ما شما درباره دلایل است که در دافورد وجود خداوند متعال جل ما شما داریم. در مورد وجود خداوند متعال جل جلاله جل اما چهار قسم تقسیم کردیم. <تصفيق> اول دلیل دلایل قرآنی است دومش دلایل فطری است سومش دلایل عقلی و چهارمش دلایل علمیست ما با این چهار قسم دلیل وجود خداوند متعال را جا ثابت ثابت می‌دانیم و یا و دانشمندان کسانی که مسلمان شدن و ایمان آوردن با این چهار قسم قسمتی موجود خداوند جلد جلد و تامور جل جاودانه را ثابت کردند. اول قرآن هستیم شان. در مورد دلایل قرآنی باید ماشین ما یاد نمی‌طلبی فهمیم که قرآن هستیم شان بر ما ناظر شده، برای بشریت نازل شده. از این خاطر دلایلی که قرآن هستیم شان میگن دلایل قرآن خارج عقل انسان نیست. چون قرآن خطاب است بر برای انسان ها ازی خاطر وقتی که قرآن از خطاب میکنه برای ما پس ما نمیشه که یک نفر از عقلیت ازو از بیشتر مخاطب قرار بدیم حتی در زندگی روزمره با خداوند متعال که ذات رحمان و رحیم است این هم برای انسان قرآن راسل از مشان نازل کردن ازی خاطر تمامی تدایل قرآنی مطابق عقل انسان است یعنی فراتر از عقل نیست که آدمونه که عقل نما بده نه و یا درک نکرد و این نفا در جمله دلایل قرآن عظیم و شان وقتی که ما شما ببینیم اولین دلیلی که قرآن عظیم و شان برای انسانها مطرح میکنه دلایل تفکر به وجود خود انسان است. قرآن عظیم و شان همیشه انسانها را خطاب میکنه که شما چی کنین؟ شما درباره نفس خود فکر بکنید و فی انفوسکم افلات تفکرون در نصای خود چرا فکر نمی استاد استاده میرنم برای آیات تو سرواغا درست و فی انفوسکم افلات تبسرون یک آیت شریف اولی که ایجا پیش من است که خداوند متعال جبل جالوهو را بیان کرده میگه سنوریهم آیاتنا فی الافاقی و فی انفوسهم حتی یتبین لهم انو بالحق ببینید خداوند متعال جل جلاله که سنوری هم سود است که ما نشان بدهیم بر زینها آیات اینا دلایل قدرت خدا فل افاق در افقها یعنی دلائل قدرت خداوند متعال جل جلاله دلایل وجود خداوند متعال جل, جل در افق اگر یک یعنی انسان به طرف آسمان ها میره و به طرف مریخ و به طرف کهکشان ها مییره اینجاست دلایل وجود خداوند متعال جل جلاله رو میشه یک عالم است به نام داوود موسی بسکوک ای داوود موسی بسکوک رئیسی اسلامی ارگانیسیشن آف بریتیش، رئیس یک سازمان اسلامی در دا بریتانیاست. داوود داود که کسی از از یک عالم مصری شدیدم بنامه نام الله اله, اله, اله محمد رسوله یک از از بنامه زهولون نجار زهولون نجار یک آلم که در ایجازی می برآن کتاب بسیار زیاد داره که سایت هم داره برغام زغرول نجاق دات کام اه... که زیادت گوها در قرآن، در یاها در قرآن خب و تا های سر فتباش به و به عربی سرشیبا رو پر قرآن ال ریاخ رو پر ال اه... بهار رو پر قرآن یه میگه که یه حاله اصلا از است با فیلن در لندن از سورایی سینمی سازمانست میگیره در پسنان که تو و قرآن از ایمان آوردی و با وحداغیت خداوند و با وجود خداوند با دار جلجه جل رو جل حفیده کردی میگه این گفت که ما علمای فزانودی وقتی که به طرف محتاب رفتیم ما محتاب از دور که شکل کروی دارن وقتی که میگم نزدیک محتاب رفتیم دیدم که دا نیزدیک محتاب یک یعنی خط سیاهی در روی محتاب است این خط سیاهی که در روی محتاب است میگه ما توجهی آرما را به خود کشف جلب که این خط سیاه در روی محتاب چیست میگه با که تحقیق کردیم تحقیقات برمان ما نشان داد و گفت که این خط سیاه علامت است از شکستگی شده شکستگی که در یکی از چندین سال و چندین قرن پیش این محتب شکسته دو میسر شدن بگم رو بسیار تاریخ اون رو باره تاریخ امریکا رو تاریخ جهان رو تاریخ رو تاریخ رو پی ای دباره از خط سیاه اینا چی گفتن؟ آیا یک کتاب هست؟ به ما در هیچ کتابی هیچ چیزی نایفتیم. هیچ کتابی؟ هیچ چیزی در بولیتی خط سیانه گفتیم. بگه در یکی از مجالس مسلمان های در غرب مسلمانایی که هستند بسیار سیرف و بس زکی هستند. از هر وسیله بر دعوت در راه خداوند استفاده میکنن میگه توفه هایی که ما داده بودند در جمله از این یک توفی بود که بسیار جالب باز کرد که این توفه نشته از که بود و این دوست مسلمان ما بر ما داده بود که این کلام خداوند است شما ما دهدیم کلام خداوند بر شما توفه دادم دا به دا سالگریتان تا شما از استفاده کنید نه ایمان سالگریش بدار کنان محفر بدار شدو بدار مزد مگن یک مسلمان درمان یک قرآن از مشهانه داد وقتی که یک قرآن از مشهانه باز کردم اونو سوال لتحقیق چندیم سال ما میکردم بیدیم که جوابش در قرآن از مشهان است که اقتربت الساحت و القمر آیت اولی سوری القمر است وقتی که من یک آیت شریف قاندوم یعنی شریف گفت که کمر، محتاب انشقاق شقاق محتاب یا شکستگی و دو حصت شده محتاب برم بایان بگم میگه من توسط انترنت همرای بعضی از علما و دانشمندان ارتباط کردیم و بلاخره وقتی که تفسیری یعنی شریف از علما جنیدان گفتم که اونا نشک بده که در زمان ظهور حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم یک تعداد از مشکین از پیغمبر خواست که اگر تو راستی پیغمبر خدا هستی بر ما محتاط دویست بگو و خدا و پیغمبر سلام دعا کرد و با اساس دعای پیغمبر سلام خداوند امی معجزه را بر زمین نشان داد و مردم دیدند که یک نصف مرتب سر یک کو هست و نصف دیگه سر کوی دیگه ایدن، دیدم که تو پیسته شدن. میگن، درخورم است که میگن که محمدیزم، آنها اکسرم کسو میخر باگن که اسلام و خاطر از اگر باگن اسلام، کلمه اسلام از چی گرفت تا شدادا بولیست، مسلمان شد، مصروبان میشن، از این باطر دشمن های اسلام اسلام بنامه محمدیزم بر مردم توضیح و تشریح میکردند که علیه محمدیت ما محمدیت نداریم دین, دین محمد صلی الله علیه وسلم نیست، دین خدا است و مسیحیت هم دینی نبوده کل خداوند رو که خداوند دین اسلام روان کردن که از دین حضرت آدم را کسیم تا است صلی یک دین است، این دین اندالله اسلام بازی نام که اینا میخوایند چیز میکن. خب ای رو میگن محمدیت چرا میگن بخادر از که اونا بر مردم این قسم فکر بدن و ما هم همین فکر داشتم که قرآن عظیم و شام کتاب حضرت محمد است یعنی نوشته محمد است و از بر خادر ما گفتم میشد که یک انسانی که در وقت بگید من در فکر از شدم که چطور میتوند که یک انسان بدنوی یک انسان پومی ناخاند که صفت شما در احادی که ناخوان بود و تا چل سالگی در هیچ مکتب و در هیچ باندون و در هیچ یونیورسیتی نرفته بود چطور میتوندی یک انسان این حقیقت علمی را که ما در و تکنولوژی در یه ما کشف کردیم در باری شروع اون میگه من بودا سا که قرآن بیشتر بخوانم و وقتی که قرآن به بیشتر مطالعه کردم دیدم که در قرآن زیموشان کسی است که برای محمد سلام خطاب میگنه که قل بگو ای محمد و الله و احد خداوند از زودمیگه وقتی من خوانم از ازی مشانه، لذا یه جای کراین بیخوانم که آب و ما که لالویی و ما اولی ذکر، و ذکر، سوری آب سو سوری آب شما وقتی در سپاری که یک نابینای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام بر صحابی مبارک است نابینان این وقتی که پیش پیغمبر صلی الله علیه و آله میواید در مجلس است که پیغمبر صلی الله علیه و آله او را اسای بزرگای قومه سیاستمدارا و شخصیت های عالی و روزی که در دار النطوه سهم داشتند اونو مردم را دعوت کردن و احرای از را در باره وجود خداوند و وحدانیت خداوند و دعوتش را به ایمان صحبت میکنند در نمی لحظه که حضرت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه این میعنیم و نابیناس در نمیکن بهش رسمیه میگه رسول خدا من سوال دارم و بینابل سال الله و علیه وسلم در احمیجه برش میگه که برادر آله خواه وقت عزیز که من این مردم بزرگ بزرگ, بزرگ بزرگ یک از صحبت نمیکنم تو صحابی هستی 24 سال من شما هستم لکن دمون لحظه هم از طرف خداوند متعال جامل جامل او برای پکنبر صلی اللہ علیه وسلم یک یاد داشته میگه که او رو متوجه میسازن به این حقیقت و برش بیان میکنه که همی تمام رو اصلاح تمام بزرگهایی که در قرائش هستن به حضرت عبدالله ابن مکتوم است که انا برش یا رسول خداوند متعال بر پیغرمن صلی علی و علیه وسلم خطاب میکنه و برش میفهمانند که نباید اینمی تشتری یا مثلا روگردانیدن کمی از صحابی مبارک صورت میتپذیراد بنان این موسی موسا بسکوند میگه ما وقتی که ایک سهار و دیدم که قل یا ایوها الکافرون بگو ای محمد صلی اللہ ای کافران قل هو الله و احد بگو ای حضرت محمد خدا است. به علاوه من میگه بر ثابت شد که این کلام كلام پیشو فنای حضرت محمد صلی الله علیه و سلام نیست بلکه افترام افترا و دروغ میگن و غلط به اون نسبت میدن بلکه این کلام خداوند متعال جل جوروز که به آخر وقتی که من درائل قرآنی رو زع کردم از این جنب من گفتم که لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلام من مسلمان شدم و خودش در جمع بزرگترین دعوتگراست امروز آیت شریفی که سروری ایم آیاتینا فی الافاقی ما است که نشان بدهیم این مردمه را چیه دلائل وحدانیت و وجود خداوند مطال چه بجرد؟ فی الافاقی در افقها و فی انفسم در وجود خود از اینا که اگر یک انسان در وجود خود فکر بکنه حتی حدیث شریف است که اگر یک انسان تفکر بکنن در وجود خود آه، آه، و در وجود مخلوقات خداوند متعالیچه از عبادت شست سال رو بزرمایت ها میگه از افتاد سال کرده این بیشتر از بخاطر ازی که انسان در وجود خود وقتی که فکر میکنن چی میشن درباره وجود خود فکر میکنن باز میفهمه که ذات خالق وجود داره که من رو خلق کردن شما ببینید وقتی که انسان هم دقیق بعدی استخد برای پیند فکر بخونه که گیرم اگر یعنی اشترم قاض نمیشد شاید منان نمیخوردم مجبور بودم مثلا چینوای واره برنجی قسمی بخورم که قایم نمیشد تا خوردن و حساب برای مشکلی ایجاد بشه من نان میخوردم، خارج قاض نمیشد من مجبور بودم یک کس دیگه را بیفتم بیفت برادر یعنی منان تو دا دارم اما که قاض نمیشد بس تا بالا وام میکردیم ما اگر منان بعد از باید براش یه اثر تاصم میداش تا بکونیمسان رزوق چی میگه؟ اون باری وجود خدا انسان یاد آدم میگه شما در سر دوران یک دفعه کار با پکر میده وقتی که گرمی باشه میکنی آ تو میکنی کار با پکر میده باز وقتی که اگر چی شد اینه ان خدایی وقتی که باز خنک می کف کار میکنی برداشتار و باز استاگر کرده می دی وقتی که شما میرسه ما خانه خود ببینید در بام خانه چی میمانه باقی نواه جورو میکنیم که اول وقتی که میعزی نواه بره خداوند متعال در سر انسان اول وقتی که رقمه چون چشم بسیار ضعیف است برازی چی کرده نواه هایی را جور کده که رقم از بالا می یه رق با طرف طرف در سر چشم باز که با این آمد باز نهایه های خودخورده دیگه را جور کرده بازی، بازیه را از چشم با پایی میاده که داخل تخم چشم انسان پایید نره و باید از داخل تخمی چشم وقتی که انسان گوش را خاق میکنه پایید بخاطر که گوش که گنده نشده او نمک میزده وقتی که آب چشم سعی گرین بداوند او آب شور و خلد کرده که دیار چهار سال چشم انسان و لو اوقات به اندازه از اون تعاریف مشتاق که چی شون تا که اونم چششم غفلت شوام و باز چششم یگانی که میگم کاش که حق من میبود چششم نی بود اسم ده اسم ندوم کاش تا خوب خود سیده میتونستم دلیل می‌بینم اینکه نه وقتی که سال انسان تکرار میگورم شروع تا سال انسان بشره انسان میتر طلب چشمش جور است این هر کدام از که اگر انسان فکر بکنه کل اذیت دلایل قدرت خداوند متعال جل جلاله زاتی است که با اونم علم خود علم قدیم خدا و شغل انسان حل کرده که اگر شما یک روز در یک ماینه خانه تلویزیونی برین و اونی که داکتر سب امی ماشیدن این چیست سر شکم مبان و داخل شکم رو مدامی تلویزیون سر کنم میگه بدر اونت چشار بیمنه قصر شیرین و ملک فرحاد است یک حکمت خداوند مطابق جل و جل است که از نمی دان انسان وقتی یک لغمه میگه جهاز حازمه میگه شما جاه جهاز حازمه رو که میخواند که چندین حجره و چندین چیزهای دیگه است که کار میکنند تا که یک لغمهان چی میشند تا که حضم میش ساموری این آیتنا فیل و حتی یا تبینه لخ مرد انا حق تاکه اینا بفرمند که ای حق است آیت شریف سوره بود و اینمی قسم آیتهای شریف دگه هستن دیگر خداوند مطال اول ده ده چی بود که دعوت در موجود خود انسان بود؟ دعوت قرآن دومی دوت قرآن و تفکر در جهان هستی که انسان باید در جهان هستی چی کنند؟ فکر کنند این خلق السماوات والارض واختلاف و اختلاف اللیل خداوند متعال جل و جل در خلقت آسمان ها و الارد و الزمین و اختلاف اللیل و اختلاف شم و نهار و روز و البحر و که در بحر در حرکت استن بما ینفع اون ناس مردم منفعه میتن و ما الله من من بما قومه که از آسمان نازل میشه فاحيا به الارض بعد موتها ها زمین مردن را مردن جباره زنده بیکنن و بث فيها من کل دابن و در بين عزیب جمعیده های منتشر میسازن و تصریف ریاح و گشت دیدن مثلا بالها و صحاب و ابرها مسخر بین سماعی و الارض مسخر شده عمید بادها و عبرها در بین آسمان الزمین لآیات اللی قومی علمون کلی از این نشانه های چیستن؟ نشانه های رو در آقل برای وجود خداوند مطابق جلجوز برای یک انسان آقلی که در باریز فکر کنن سوری برقره آیت 164 لآیات اللی قومی علمون خوب. کنار این موضوع که میبینم این خداوند متعال بر انسان میگه انسان های مؤمن را جای دیگر توصیل میگنن که اله یذکرون الله قیاما و قعودا و که انسان ها مسلمان ها کسایی هستن که خداوند متعال در حالات مختلف چی یاد میکنن میکن و تفکرون في خلق السماوات والعرض و تفکر میکنن در خلقت آسمان ها و زمین و باز بعد از میکنن که ربنا ما خلقتها دباطلا خدایا این همه باطل خلط نکردی وقتی که انسان همه اینو رو میبینه این دبایله هست که قرآن از زبوشان مطابق اخل انسان برای انسان یک شما در باره زمین فکر بکنید یعنی ما دفته گذشته گفتم که خداوند متعال برای ما شما سه قسم قرآن نازل کرده سه قسم قرآن یکی قرآن مطلوب یا رو قرآن که تلاوت میشه که با بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین شروع شدن و با سوره الناس ختم میشه. قرآن دومی قرآن مفتوح است. قرآن باز است که این خداوند متعال جل جلاله اینی کائنات این که ما شما می‌بینیم مثل که عزاد سعدی میگه که برای درختان سبز در نظر گوش‌ها هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. اینی قرآن بازش انسان باید بترحبی سایی کنند و خود این قرآن مطلوک برای انس... بلی انسان می فهمانند شما انار وقتی که قرآن خواهدید از دوری تیوریک برین به پرکتیک برین عملا و میگه که ببینید اینمین چیزاره که شما میبینید اختلاف ازداره شب و روز رو ببینید که... که شب میسازم که روز میسازم ای زمین شما سرکنین، ای آسمانها رو کنید ای آسان مختلف قدرت خداوند متعال جلل جللو سرکنین ای کل جللل برای است تلائلت با وجود خداوند متعال و قرآن سیو می گفتیم قرآن قرآن بود قرآن که حضرت رسول دار سلام و صحابه کرام بودن که اونا آره رو می گفتن قرآن متحرک کونو فیلن مثل ما مارشم این ما شما قرآن بتحرک نداریم در تفکر ما در ساختمان فیزیکی و مادی کائنات در جهان هستی، در شخصیت خود انسان انسان هیچی فکر نمیکنه یک خلا آدم یک دو کتاب بطلع بطلع تب همون تو الگر در بکنن درباره وجود انسان چی میگن؟ و درباره جهان شما ببینید، اما یه علمه های فسیولوجی، یه علمه زمین و دیگه علمه ببینید که درباره یه اینمی کائنات چی میگن؟ شما هر کدا مزیره وقتی که سهل کنید، ا قرآن مفتوی هستند که خداوند متعال جالب جالبه جل انسانش میکند. سوم دلیلی که در قرآن عزیزمون برای انسان گفته شده دعوت قرآن و تفکر در حیوانان. شما درباره حیوانات خداوند متعال جل جالبه فکر کنید. افراد آن دوران ایران قیمی که ایپا خونه کرد. چرا نزدیک نمیکنند؟ عزت خالد غدیل طلامبو یک جنرال مسلمان بود که رهبری قواعد مسلمان در وقت فتح مکه در یک بخشش و دوش داشت و یک کسی بود که خداوند مطال جرد جرد حضرت پیغمه السلام ایره بنامه چیز یاد کرده که ایره میگفتند که صحیف الله المسلول یک... ببینین، حضرت خالد دو قصی بسیار جالب دارند یک کسی جالبی شیست که یک کسی رو در کتاب های اسلامی نوشته شده که جرجست رضی اللهم با جرجست بنامه مسیحیست هیچی دو رضی رضی الله و گفته شدن وقتی که خانیم بگر جر جس رحبر یا کماندان های رومی بود در جنگ در فتح رو این بگر امرای حضرت خالید در سابق قانون بود نه بود که رحبر را برن خرار در گوشه یک بیشینه و از, از, از دور خودش تو چیز کنن. رحبر مستقیمند میرد در, در, در میدان جنگ اجرام مگرد و رحبر در رحبر چی مقابله میکرد میگه اینم این جرچیس آمد که حضرت خالد شمچیرهای پده کشمیدن میده این خالد را دراتان اون کمی شمچیره کم میده کم شمچیره که مرکت شش قدم ترم پشتر میره این این وسط جنگ است این از حضرت خالد پشتر میگه خالد میگه بله این شمچیره میگه خدا تا بر برکتو نازل کرده؟ حضرت خالد میگه نیم کل را، آبنه. خیلی شمشیر دوی قوات دوی سلاوت از کجا پیدا کرد نگی این شمشیر من شمشیر بود که در جنگ آهات آه سبب شد که چندین مسلمان به شهادت برسند لیکن وقتی که من مسلمان شدم خداوند برای هدایت کرد و این شمشیر رو به رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش کردم که یا رسول الله ارمت تسلیم استم به کلمه حق و شمشیر پیغمه پس شمشیر رو برمداد و مرا گفت که تاوالی که شمشیر تو زنده اسلام بود او را برای اسلام استعمال بکن پس برمداد و از این خاطر میگه من از الله رو راه شمشیر خدای باز شدم میگه از خداوند متعال جالله جالله چون من ایمان کبیداشتم و اینجا میگه یا خالد انه یک قبنده ها رو نومی یا خالد یه سوال دیگر میگه بگه از چیست خود این شمشری تو از آسمان نازل نشدن این قوات همه چیست با شما خداوند با تو و بزرگی داره. با تو قوات و با تو ایمان داده ایتانن که دلیم اهمیت دمیه باید میدان جنگ میگه لرزن چه این موجهده شایراز ما خریدم بسیار جالب یکسته نشون کرده بود که جنگ هزبالله لبنان که اسرائیلی ها بود اسکرهای هزبالله لبنان همون تو بسیار قهرمانان هم می طرفی جنگ و اون جدشان می که اسکرهای اسرائیلی یکست کردن پشت موشه لکسش بگیر یاد بگرد من رو بریم دا جنگ، من رو تو رو بطور رایی بکنیم، من رو تو من رو چک، من رو چک، هیچه حضرت خالد داده با رو ببینه که حضرت خالد خوانی قوات و صلابت میده داخل معرکه ای میکنه یه میگه مگه اگر من هم مسلمان اگر من هم مسلمان شوام، آیا من هم اونمو عزت و اونمو افتخار و اونمو مکانت که ببینه اونا در میدان جهاد مردم دعوت میکنن در راه اسلام جهاد و دعوت؟ دو روی یک سکه حس که یک طرفش نوشال بود طرفش صبر بود نمیشلا مجبورش کردن در دوش مصاوی حرکت بکن در وقتی که قوت بود از قوت وعده لمستعط من قوه ومن رباط الخير تنهنون به ادو الله و اعونه وقتی وقت قوت بود اما تو قوت باید داشته باشی قوت ایمان قوت اقتصاد قوت صلوات و همه عامج ترهبون به یا دو الله بعدوكم خطر صائم دشمنان خدا و دشمنان دار با در وقت دعوت بود و با بو زبان هم دعوت بده میگیدین لازم است که اتحاد خود را تمامو با شمشیر و قطتی مردک برای قوت ایمانی خدای نشان بگذار بس این پرسانش میکنه اینجا حضرت خالد مغرور نمیشه بلکه گپ میزنه که در قلب از نفرت تاسف میکنه برش میگه که یا جرجس ما که مسلمان شدیم به خاطر دی مسلمان شدم که ما رسول الله مثلا لما دیدم در خصوص چيري مبارك رسول الله صلي الله عليه وسلم انسان ذل ميکرد و مسلمان ميشد و آدمي که سر ميگذا رسول الله صلي الله عليه فورا ميقول لا اله الا الله محمد رسول الله و, و تو اگر دريورت مسلمان شي که رسول الله صلي الله عليه وسلم را تو از ماكنه بهتر تر از بهشت تر است میگره یعنی از جر جر می لا اله الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و روی خوده دومی قوت قوتهای علمومی جهاد میکنن و در اینمی معرکه و شهادت میرسن و انوز میگه یعزت جرجست جر وقتم پیدا نکرد که درقل نام کافرینی خدا نام مسلمانی بسازن از این بادر در کتاب های اسلامی به نام جرجست رضی تعالی عنه شهید راه اسلام او سخت شده است قزی دیگه حضرت خالد که در قسمت درس ما شما التفات داره که ما وصول بر داد نگم او که حضرت خالد یک جان بزرگ خلباندار عالی قوات اسلامی بود مسلمان ها گفتن که ما می خایم که از جزیره عرب اسلام اون طرف انتقال بده می خایم که پیشرفت بکنیم و اینکه صحرای بسیار بزرگ از صحرا اگر شما دیده باشین صحرا یک تیکه ریگستان است رگزار است از او هیچ علام نداره چاه هم نشفتن هم بود خالصات باعث تشکر واسه پیشرفته شدن جون شدن و وقت امی گپان نبود بگه در وقت بود که مردم آودن پیش عذرت خالد رضی الله تعالی عنه و بهش گفتم که یا خالد یا خالد تو برمارا پیدا گو که ما چه قسم قوتهای اسلامی نم از این ریگستان بود از جدیر بیرون بکشی میشن بگه خالد رضی الله تعالی عنه با ایمان قویه که به قرآن عظیم و داشت اگر زکا سا بین ما پیشی فرون آ، پیگرات دبیش سفر کرد، با باریسه در قرون گفت قرآن در خانه ماندگی بود و اون وقتی مرد کردی کرد، رفت پیشو سئس چې باور شد. اگر با قرآن وجوم میکرد در خانه تو می خانی قرآن بالای و می من ما شفا و رحمت شفا و رحمت است. اگر به شفای دې عمل که سفر بکنی و دگه جیبنی مستقیمان وه قرآنوجو بگن حضرت خالد آل یک جنرال است یک قمندان اسکری است می که بر مشکل اسکری خود و بردن کمات های عسکری از از از این منطقه جزیره به اون طرف دیمان بکنه حضرت خالد حضرت خالد ایمان داره که خداوند کتابی را که نازل کرده دی همه مشکلات حل میشه حضرت خالد رضی الله تعالی و به قرآن رجوع میکنن وقتی که باز میکنه مشانه که قرآن عظیم الشان که در قرآن عظیم الشان اعوذ بالله من الشیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم این که افلا ينظرون ال الی کیف خلق و این سمایه، چرا نظر نمی کنید به طرف شدور که چه قسم خالب شدن و این سمایی بدن فاس مراکه ای فروپیا که میگه افلا اینجا همزه است این همزهر، اول ما تقریبا عفتش قسم امی مغنیال بیبی کتاب از در در نقل، همزه همزهر قسم تقسیم کرده. یکی از همزهوران همزه و ما نی همزه استنک و همزی توبیخ میگه همزی توبیخی نفر در مزید خنده میکنه توبیخش برایش میکنه برای او بیشتر عطات في فرمودن. او در مزید خنده میگه سوال سوالی استفاده میکند؟ با خطرشی خنده نه بیشت به ان راج في باستکن و behaviLee begunーブید اینجه میگ وقتی که میگ که افلا ینظرون اللعبل کیف خودخت میگ ازت خالق درککر که ا در هقت یک نوه سرزنش شو توبیخ است برای یک مسلمان که چرا نظر ممی ازت اضرت خالق گفت م جواب م یافتم رفورن پشو المها میترنری همووخت برشان گفت که داکترسب مترنری خداوند بر ما میگ که افلا ینظرون اللابل کیف خودت من فکر می که همی مشکل اسکری مدر ام آیات قرآن به مفهوم می سازه و او بگو که شطور چی سفات دارد؟ او با یک تفسیر وخانه مرا و قرآن قرآن به عربی هستن صفت از ایل و مصففات هایی که شد کلی کللت در اجاز قرآن و کرده گرفت دو دف ق بز من دی متطفابی میشه اومده. از اون خاطر ل آیان تو اقه ملایی و خود قبل میگن این نقل برشبوه که داره که اگر یک هفته تشنبانیش او بیتیش بازو او چون ستا رو دور بیرزم شار دون رو خود فکر بگرم میگم آره ایسایم این دفعه من یک هفته او ندار دفعه یک ماه او نمیتن از این خاطر برخود یک ماه او زفیره میکنه در سکن خود ای استفاده دار آ گفت خلاص داره فورا راقوا تو ازو میره گفت آماده ای ببینم چطور اینطون آماده بکین یک چات شدنم آماده کرد برای نه یک هفته و نذت روز جمعه وقت حرکت ما و شما میشه تا جمعه عیده چطور اون روز جمعه چطور ابلدان چطور اوی یک مره بودن وقتی حرکت کردن در گفت او ما خلاص نون ما خلاص حضرت خالد تش گفت که برای اسکر و برای همین مردمایی که در کماندو هستن آ کسریکسگ فقطار باشن کممان های خارجیمسیش ها چند با و موری دیگهپ را میخورن یک کممانوز یا ن اسلامی چی باید گفتن که عنوویشه همه شطور هم چطور که از گشت استفاده بکنیم و من اینش که س کردن که یک بیلر الان عوضی تازه کوپورشا باز این مردم از زییه خورداد باز که چند کل برن باز هم شد تا شدگه روان میکن بودن توسط عزیز شدن از اینجا اینا خودانه سر که برن باکی مانده دوله انشاءالله در رفتی بودن